دوست سودای روخش گفتم ز سر بیرون کنم گفت کو زنجیر تا تدبیر این مجنون کنم قامتش را سر گفتم سر کشید از من بخش دوستان از راست میرنجد جدنگارم چون کنم نکته ناسنجیده گفتم دل برا معذور دار اشوی فرمای تا من تب را موزون کنم زرد میکشم می کشم زن تب نازک بیگناه ساقیا جامی بده تا چهره را گلگون کنم ای نسیم منزل لیلی خدا را تا به کی رب را بر هم زنم اطلال را جیهون کنم من که رهبردم به گنج فسنی پایان دوست صد گدای همچو خود را بعد از این قارون کنم ای مه صاحب قران از بنده حافظ یاد کن آ تو دولت آن حسن روز افسون کنم.